گراني از ازو خوشوئيد سلطان لبه خواش حالين لبشي 69 خون نوئكتبي چشتي مجيدي هزاري مكراني هت نولاتن فرمون لگرمان بن هجر مکرانی ال جرانیوی بسر ہاتی جنامی خویدہ گتسر او کاتیکا بکار یک ال چیا ول شورش دورک او تبو او او ضلیت ٹیلیگرافیکم ب بیسیم بوہات کہ من کہ خریکی خصوص کردن بو سفر بوم رادیو بغداد کرد ہرا کہ من پاک سازی کردو سری مر من پاک کردو بلا مصطفی کوجداوا خبری که زوردل تزین بو، بلام چون که زورم دروه لبغده و بیست بو پیو نپیو شوینی. نخیر، برزنی شکر ساگو تنیا دولت لچه پیرس هتو تخوارو بری روش اوائزی لجه شراکت دایگیر کردو و شربر دوامه. لزمانی قاسم ده، ماموسته که کردی سوریا بنای محمد علی زور زورپیاوی که محترم پینج هزار دیناری شرشی دره بویا کشمک با بو پیشمرگ بکره. همه علی خواجه چوب و حلا پولی خوارده بو نه ها توا لدالی خوم دادموت ای خدایا من پینج هزار و چند دیناری که شرشم لایا جگه لفیشک و بوزوی که کریو دنیاش وشی و خو اگر او پولا نگاتا و خوانی شورشو، حتی لرگه دا بش کجریم ابرو مچیو الین اویش وک علی خواجه خواردویتی ای خواه هرم جر بجیم تا اما نتیکا تسلیم چند پیشمرگی یکم دگل حد، هشت ایستر من لفیشک بار کرد، من سواری منصواری بون، لبالتش را رشاد بالتی، مهندیسی جنگل و دوسی پیشمرگی ترمان من را گل کوتن. جهتا لو ریگ دورو سخت داین، با آور ریگ بدموالای خور کیه، که حات بون ملا مصطفى فرموی، نچی تخنی فلانه کس بکوی، کجاشی زور پیس و نامردو ددکوشه، بلانتماحی من با گده کردن دره شورش ده لیم نگره. للا این خواه ما وکس اکم نرده لی. زوری بخیره نابو. پنجا تنگرانی دابویا. چل صندوق فیشکی پیفراش دابو. ده صندوقی شی با پیشکشی شورش دابو. بکا بره منی وطبو. پیان بله. بله من جاشم. مم. راسته که من رجمنی برزانیشم. بله من دزانم لسایی یویا. که دولت پول مد هر یو و نمیانن دولت اگر نمکو جیوک تاجیل راو کوتا خویره امدکا. او خوش خوشموتوه تا پیش مرگه گنیم یا لازم نبکست دن که گنیم یک بریتا منیش دموت مالی جاشی و هر اوه. چند جاری کش فیشک و خویر من لحرس قومی کردی که با کامیونی خویراندهات ندشت و قاچاق فروشی اندکرد. ملا عزیزم نالکی دوکی زور پارا و دگل خوامی برما بارزن. دای ګوت غازی همروج در کاری دکردم. دا لوتا لوته تولې ری اسودم بلالم نه ځنم بو چی برم منال بو د ترسم شته کی به د دوای دو روش تو شی خیوته کوین لسره ریګه حل درا مو محموداغا دو روش بو لوی چا ونمبو وتی د هیچ هیڅ دو هزار فیشکم بده یی و تم محمود آغا یک فیشک ایشت نادمه دیبم و بارزان که او شرگورهی تدائه وقت چرچی میدانی منگوران هر عودیت خوارو مندالیم نه هاتب و سر سیصد فیشک ایشم ندائه جاری پیشو که برو دوهگ دهاتم لدو پرده میوانی بنکی پیش مرگه بوین که حسو میرخانی پیر رادگه ایشت پاش نیارو لچوم چومه اوبر پردکه دو کاری تبو پرینوه کاری تناف بازان بو سیبره بردی که خوشم پیدا کرد که لزور برزی و دیروانی زی پتو یکی تنکم ها بو دامه بند سرمو نوستم حسو دگل چند پیشمرگه یک هد و تیان سیرا حال ندیراوی لسر اولیوار باری که برده چون دنوی خطره هسته. حسو پتوکی لیور گرتم هرموز چکو ملک که فرمانده هر ازاکانی شرخ شو سرو که پیشمرگه مسیحی کن بو لحسوی ورگرت. یکی تر لحرمزی ورگرد کچون جنابه تالی دگری. هینده دستاو دست کرد تا پتوون بو. استاش نمان زنی چی بسر هد. قرار دره تا دیم مو بوم پیدا کنو. ام جاره که موام وتم کاک حسو که پتوکم و تی بخوا ندرز رایوا. کک نوک اک شعره کم با دروس که ام چه خواه سینگرد چونه. منیش وتم رازیم. حسومیرخانی دوپری لحسومیرخانی جعجوی جعه که دوی لقلاتزه حکمی دکرد حسومیرخانی دوپریم زور وبر دلکوت هم عقل، هم زور عذا، هم زور به نظم و ترتیب نوبت یکی سختی بو در منان بو هینا نیخوارد نردی بو پیشمرگی که نوبتی داری حوالی زور به شوانه لناو چیا و لیر وار دمائن اگر اواره بگیبانه بنکی پیشمرگی میوانی دبوین پولا امانیتی کم کرد بو نو چمدانی که چکوالای ریشتاشین که زور کنو بدنو ما بو دم گود امم بو بخانه سرباری استریک بو خوشم چمدانی که باشم به دستو قفل دا بو همیشه با باوشمو بو که هیچی تیده نبو تا اگر تمه احیان کرد پولا که امی دستم بدزن کس بیری چمدانی ریشتاشین که ندبرد تریف نکره رگمان چند سخت و بردویو حلمود بو پیم سیر بو یستر چون درده چن یواریک با کیوه کلگرائن همویدد گود پلیکانی دیوانه ماویی که زور کمان با پینج ساعت بری چونه گوندیک بناوی هناره مالی لینما بو بنکی هرمزلوی بو شودرنگی که گینه وطی آی بخیر بین وقتی کی باش هاتون وطمان خبر چیا وطی روز روشلمو بر بسر گوندیکی جاشان منده دا داوا 600 ست مره دولتی و آقا من و سر بازو سر و چوار جاش من کشتو و پنجام ریش کش من بطالان یه نو مره کانم بسر بنککانه بش کردو دو ستم نرده برزن بیس سرم بو خو من یراو تاو دادهی دادهی کرا گوشت سرکنو بلان من نیا منیش پرسیم که که هرمز عدیمریش کوا و, و بخواه مریشک نما همو من خوارد گوتم دا جاور فلبکویت سمرشک جاشی مسلمان چون انصافی للا دمینه جمعی گوشتی بخواه من خوارد بری بینی پیشمرگی که هرمز حتو خویه نبو هرمز بلیوان بشیکردو هندیکیشی ولانا بابن کم و تی بخواه نبیبرون امنی و رویش میوانی منن بیتو خوش او جمعش لگوشت جاش مربوین پشنیوارو اتی هستن برون اتمن نه، تو بسر ملا مصطفى و مسیح با او شویش میواند بین وتی دلیم هستن برون کارتان هیا، نرون درتان کم چارینا چار دیسان، دم لپوش و چیاخل گراین سردنه شینم دوازده شو روزی برد تاگه اشتین روکار زیبا دینن لباریکای دولکی تنگ برده لولاتی زیباریان، تاوشم لبیر چوا خوشترین ملبندی کمن دی, دی تو ما دول نهلهبو ک گوندی مسیحیی کوردکان لین دی هات هموی لبردی تشرو خاوین ولاتی کی پرله دغلو دانو برکت هر دبو سیریبکی لهمو اقاران رز و می میو همو دجواری سفرکه بو تاونه ندبو کلسر شیا و بروزی سرولیش هاتین نخوار زورجر دبوی بدو کس یاری دی استر بدین ک له باز بده رشاد بالتا دی گود أي نحلة لما بيوكسيح والجال يري كردو تريه چودرنگ یک چوی نگوندیک لسرزی نوکهیم لبیر نماو بلام حیدربگ نوکی بسر را دگیشت کدم ناسی دو ساعت شوی مابو دبو بپارینوا جانتای پولاکم خستناو چمدانه گورکا حتی سرزه کلکی با کولک سراوی جگه به حال بحال دبیتوا او زور خورا کلک او دیباو لدوی دو کیلومتریک اک ورده کلاکوان کلکوان دیبا اوبر نوري منو رشاد بالاته په كواهات كلاكوان وطي نا بي چمدانت په به دوای بود دینم. وطم يان خوم و چمدان بطنیا بفارينوا يان نا نا چار قبولي کرد رشاد منی لسر چينچ کان لسر كلاك جه کرده چمدان لپیش ما وطي اگا تان لخوتان بي نا بي هج ببزون خطره ايدي كلاكو و ركوت رشادی مبارک و حرمتم بگری خوی لاده وتی از ازبانی جگه کد نخوشا کلگ لارو بو اوحات سر پشتین من بلام کلاکوان زور ماهیر بو و خوکوتو بساول لیدانو لسر یک راستی کرده و زوری خوکوتو را کرد که سیر بو نخنکن پرینه و ترو تلیس سرمای بر بیان دنیا تاریخ کوتین پل کوتن هندیک پروپوش من کو و آگر منده ران کودر پیدا کن او بگویی رود لذتی اگر خود وش حالش لرزه. هالانی ترش پارینو او یستر بجمن که بعد را وکی دیده من بنیرن بچیای شیرین حالگراین توالاتی گیشتینه هوارگمالی شق احمد ال ل بیرکی باستریان شق نوری کردی شق احمد لبی بو یک من خورد و هرکس لسر بردی کی پان خود من لگز داو تیر نوستین. فشنیو رو استرکانیان بو هین این، کرد کرده بو بوزوی رانکو چوغه کن، بلام او زوری فرمو من کمم جواب داو و تمتا نیدم او با بارزانی کس ناین بینی. چه شیرین بسرگوندی بارزان دا دروانی، هوارگی مالی شیخانه، چالبفری طبیعی زوری هیا، مرلعای بفران پاراو دبیو او چالبفرانه تا بفری هر دمینن، بقصه رشاد که مهندسی جنگل بو لحزار و میتر بلندی بو لاو دار ناروه او شویانه ایمه لیابوین کیفه رو دروی زواری هبو داری نگهیشت بویا شیخ نورو رجنامه که عربی هنووتی پیم نالیو کناکری الکیویا کناکری چیا تومز کناکری لیابو بوا قونی کری لپش چیا شیلی نوحاتین اوارا عصرگینا لیارا بیره کلی رواری که چوغورو چیایی که بلندو بنکه برزانی بو لپیشمرگی که پرسی که ملا مصطفا و تی چو اتا او دیویچیا با دروین سیدی شرگ دکا من بسایید مود ورکا که داندان پولکم با سایید بشرت هناسی که ازو دمال خمل سرخال را کشا و کیف سست نوجی شوان برزانی حتو سبه او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 فرموی نه خیر تو ازادی اگر پیت خوشه بچو دشزانی زنی ایره چنده خطر و آگر بارنو همو روز شرول یک دانه من لبرته دلم منی شوتم قربان ناچم اگر تو امرم پیب کئ خوم دنو اگرش داو بلان به خوشی خوم دموی لم خطر ده لتو دور نکوموا فخر بو مرګه دکم کلن زیک تو بمگاتی، یکیش من کابره اکی زمان شروع خیان تالم لیم دگل او ما مستانه ناجیم موری جاسوسی خیانتم لیدنو در مکن من خوشم در ناسم و اوانیش اناسم ایدی فرموی بمینوا تیره بر روش هیچ موده ناده بیانی لشونه که خومن دگوسته و دچوینا روکاری دولی زوره رن که بردالانه که پرگرشه تا اوارا شوینکی خومن کانی و اوی کلیه بو زور لی پیشمرگه لی اوارده لیوی جلیان دشوشت. بیانی که درویشتین پیشمرگه کم دیت لبندر لنزی کانی دانیشت بو. وطم توشوره بروین. وطی ایرم خوشو نایم. او روشه بوان بایک و دارکه کوت بو لرگو ریشه درهنه کش شهید بو. روشه شرگه را کوت دالی تيارو طاپو قرمي تیر بارو تفنگان غاليه کرد ملا مصطفى لشوه نكوا که باور که تفنگی ده گهشته با دوربین ديرواني شروع تاریفی ده کرد اها پیاوکان ایمه لفلان شوهن شکن. ها لاتن خویان گهان دفلان اشکوت ای افریم لاشکوت هات نوه در حجوم يان کرد اها چوار کسیان کشت اها جاشالاتن با پیاکانی نو ده فرمو سرباز هر خونا وقتی نیوارو لبیری چوبو نان بخوا، با دوربین دیروانیو شرحی داده. روشک ایجازم خواست لچیاب چی مخواه رو سری بینکی بیاسیم بدم. کک شوکت و حوالانی لدم چمی چمک کپ ریکیان کرده بو. قلاب یکم لیسندن که ماسی بگرم. قلابم خسته بو و گوم. ماسی پیوه نهد. تیارش لسر من و. به هر دو دست اشارم بو تیاره دکرد. و تیان دخیلا او او چی کی تسرا نکه شی با تیراپید نزنی وتم کاکا ما سی سبب نه نسر قلا دلم بش کو تیراپید بزانیو بومباگ بهوی جتا گوم ما قرب کا وخریان کاتوا مسل کردانه دلای چاو ترسن وک بلا من به عکس چاوم بخیره تو نا ترسی خوم ترسنوکمو کم وای سر هاو یک دبینم لاموه زور حسان سری کهوم کچی لانیوه پکم دکوه گومک هبو هر سوری اداو کس کوشین ده اینوان بچاو پیموا بو اتوانم به حسانی به پرموا، بپرموا خومتی هاویشتول نوارستی گوم کوت ما پلقاجی مندو بون پیشمرگکانی بیسیم غریانده پشتی نیکن بو حوادامو گرتمو کشانو لخنکان خلستم گیسکیک هر باعبعی وتم اوچیا وتیال خيال بجما او شله دمانیو چاګ بیتو بو خوونی وتم بخواکه کیخم په فتوی من بی خوين صاحبی ايدي هر اوکات او گوگرانی عزیز و خوشویست ترشوی کتر و لبشت کتر در پیت اندگی نوا شوتن آرام و شدو بن.